پسلی پنجم خانه آقای کاتارو کنار راه سربالایی کوه جایاما قرار داشت وقتی شیگ ماتسو برای رساندن های برنجی آین نیایش و پیشکش برای حشرات به آنجا رفت اول سربالایی خودرو سواری که نه خیلی بزرگ بود نه خیلی کوچک توقف کرده بود و میدرخشید. خودروی غیرعادی بود داخل خودرو خالی بود مرد میان سالی که راننده آن به نظر می رسید، کلاه لبدارش را متمایل به پشت بر سر گذاشته و به خمره آبی سرک می کشید که سه سنگ در آن بود و از لوله خیزرانی به آن آب می ریخت. فهمید که مهمانی غیر عادی آمده است. شیگه ماتسو کمی نگران شد. هوای خوبی است ماتسو کنار خمره آب رفت و عمدن چیزی گفت متفاوت از آنچه حدس می زن. این اتومبیل با اتومبیل اختصاصی درمانگاه ها در فکویاما فرق دارد نه؟ مهمان محترمی از فوکیاما تشریف آوردهاند؟ نه، من راننده در دربست هستم. خانمی را رو از روستای یامانو سوار کردم و آوردم. در این صورت آن خانم مهمان دکتر هستند نه؟ معمولا اگر کسی ناگهان بیمار شود، اتومبیل دنبال دکتر می‌فرستند. آیا آقای کاتارو بیمار شده است؟ نه. کار خانم پرسجو برای ازدواج است. از حرفهایش اینجور به نظر می رسد. بیشتر از یک ساعت از اینجا منتظر هستم. اگر از روستای یامانو برای پرسجو درباره ازدواج آمده، پس بیشک مهمانی بود که برای تحقیق درباره یاسوکو آمده بود. روستای کوچکی بود، پس راحت فهمیده می شد. شیگه بار دیگر تپش قلبش را احساس کرد، اما، با چهره خون سرد به داخل خمره آب سرک کشید. این لچتاجه ها کاملا سیاه هستند نه؟ در کودکی هم آنها روی پوست خال خالخالهای سیاهی داشتند که به آن ماهی ها سونا هامی می گفتن. احتمالا سونا بودند که در رودخانه های داخل در راه زندگی می کردند. حالا سونا مگوری ها به خاطر کودهای های به کلی از بین رفتند. در آن روستا علاوه بر سونا نسل گیگی چو هم از بین رفته است شاید منظور گیگی است ماهی که باله های پشت و سیناش انسان را میگذید و کمی قرمز رنگ بود در رودخانه روستای ما هم نسل گیگی از بین رفته است وقتی دزدیده از لابلای و برکا نگاه کرد شاجیهای اطراف خانه آقای کاتارا و نیز در ورودی بسته بود آقای کتارو و همسرش چگونه با شایعات مربوط به یاسوکو برخورد می کردند. احتمالا حالا وقتی بود که مهمان به صحبتهایش پایان می داد. که برخاستند یا نه. فهمیدن آن برایش سخت بود. ببخشید مزاحم شدم. همسایه ما مریض شده است. فکر کردم شاید دکتر باشد. ببخشید. وارد باری در جنگل تنک بلود شد. رفت و آنجا روی سخرهی صاف نشست بسیار خوب تا برگشتن خانم مهمان تحمل می و اینجا منتظر میمانم. نمیتوانم این کلوچه های برنجی را به آقای کتارو نرسانم اگر با کلوچه ها به خانه برگردم مجبورم در خانه به زنها توضیح بدم نمیخواهم آنها بدانند که آن خانم از روستای یامانو برای پرسجو در باره یاسوک آمد است سخرهی که روی آن نشسته بود چندان بزرگ بود که نشیمنگاهی به اندازه دو تا داشت قبلا نزدیک این سخره تنه درخت کاج بزرگی قد کشیده بود که ارتفاعی نزدیک به پنجاه متر داشت اما در زمان جنگ به ازای قیمتی مشخص به دولت فروخته شد درختان جینگو حیات خانه آقای را هم که همان زمان در ازای قیمت مشخص به دولت واگذار شدند ارتفاعشان با درخت کاج برابر بود از اواخر پاییز تا زمستان، سایه صبحگاهی درخت کاج و درختان جینگو تا دامنه تپه خانه شیگه ماتسو دراز میشدند. شدند. ماتسو در دوران کودکیش خیلی کم برای تفری به این صخره تخت می آمد. او بیشتر زیر درختان جینگو خانه آقای کوتارو میرفت. هنگامی که برک های آقشته به شبنم درختان جینگو میریخت، ریخت، سخف خانه آقای کوتارو کاملا با برک پوشانده و زرد رنگ می شد. وقتی باد میوزید، برگ روی سقف، مانند آبشار زرد رنگی از لبه بام پایین میریختند. وقتی گرد باد میوزید، برگ ها دو تا سه برابر ارتفاع سقف رقصان به هوا بر میخواستند و مانند گرداب زرد رنگی بر سربالایی و جنگل تنا بلوت بلوط میریختند. بچه ها بسیار شاد می شدند. پسر بچه ها وقتی شدت باد ضعیف می شد، و برگ رقصان بر زمین میافتادند دو دستشان را بلند می کردند. دختر بچه ها با دامنی که جلو گرفته بودندش در حال خواندن آواز شمارش تعداد برگ‌های داخل دامنشان را می‌شمردند. یک برگ، دو برگ، برگ های ژینگو. چهار برگ می‌شمردند. بعد یک برگ می و میگفتند، اردک ماندارین، خروس، بال ژینگو. و دوباره چهار برگ میشمردند با تکرار این کسی برنده میشد که شماره برگهایش زیاد بود. در چنین این مواقعی گرو از خانه آقای جارو به دست برای روبیدن برگهای های سربالایی خارج میشد. ظاهرا نگران لغزیدن پای بچه ها در سربالایی بود. آقای گروه آن زمان رسان اداره پست روستای کبتاکه بود. او حدود بیست سال در آفتاب و باران، محموله پستی بردوش در فاصله بین اداره پست کباتاک و اداره پست تاکافوتا رفت آمد می کرد و از سوی وزارت ارتباطات به عنوان نامرسان ممتاز شناخته شده بود. چتری بالای سر می گرفت و کت کار نشاندارش را که با خط سفید روی یغش نوشته شده بود اداره پست کباتاک میپوشید. کیسه مرسولات پستی را به چوبی میبست که بر دوش داشت. با پوشیدن سندل های حسیری پاتابدار رفت آمد می‌کرد. اگر بچه ها در مسیر بازی می کردند یا گاری و گردونهی راه را بسته بود فریاد می‌زد: نامه خبر آمدم خبر برای شماست خبر آمدم خبر راه را باز می کرد. بچه ها دو طرف راه می و بعد پشت سرش همخانی می کردند. نامه خبر آمدم خبر برای شماست خبر آمدم، خبر سا سا سا صدای بسته شدن در و بعد صدای روشن شدن موتور ماشین شنیده شد خورشید در حال غروب بود وقتی شگ ماتسو از جنگل بلوط بیرون آمد و به سمت خانه آقای کوتارو رفت شاجی‌های اطراف خانه بسته و شاجی در ورودی باز بود از ورودی خانه رد شد روی پله چوبی، آقای کاتارا دو دست روی سینه به پایین چشم دوخته بود. به نظر می رسید به همان شکر که مهمانش را بدرقه کرده، بی حرکت نشسته. شب خیر، کاشت خوبی بود. با احوالپرسی پرسی آقای کاتارا صورت متعجبش را بالا گرفت. آقای کاتارا شیگه ماتسو را دید و با بله کاشت عالی بود، احوالپرسی پرسی او را داد بنظر نظر می رسید روبرو را ببیند. پس باز چشمانش را پایین انداخت. هرچند کمی بدبینی بود اما به احتمال زیاد حدسش درست بود. آقای کتارو درباره باره یاسوکو سال پیچ شده. حتی آنچه را هم که نمی خواست بگوید گفته و حالا بسیار پریشان و خسته بود. شیگه ماتسو این را حدس زد. به خاطر ماهی لچداجو چند روز قبل تشکر کرد. کلوچه های برنجی را در کاسهی گذاشت و بدون هیچ حرف دیگری برگشت. تعمه تلخ به جامانده غیرقابل قابل وصفی بود. بازی کردن با یاسوکو اصلا درست نبود. برای اثبات نادرستی اینها باید زودتر یادداشت‌های های بمباران اتمی را تمام می‌کرد. اما قبل از ارائه آن لازم بود با یاد های یاسوکو تطبیقش دهد. به هر قیمتی شده نباید این ازدواج به هم میخورد شیگه ماتسو فهمید این احساسات او را تحت فشار قرار داده است شام را که برنج و چای بود تمام کرد و شروع کرد به ادامه رونویسی یاد های بمباران اتمی در حالی که کنار انبوه جمعیت سرگردان بودم سرانجام توانستم از پادگان شرقی خارج شوم. در مسیری که از شهر به پادگان شرقی می رسید، صف آوارگان پشت سر هم ادامه داشت. اغلب آدمها خودشان بودند و لباسشان، اما میان آنها کسانی هم اساس خانه را برگاری به گنجایش هشت نفر بار و روی آن کودکان را سوار کرده بودند. چند عضو یک خانواده که در سیل ازدهام جمعیت نمی توانستن جلو بروند و به ظاهر دل رها کردن وسایلشان را هم نداشتند، سر و صدای زیادی راه انداخته بودند. زن و شوهری هم دو سه بسته در پارچه پیچیده، چمدان و کیف سفری را به چوب ماهیگیری آویزان کرده و هر طرف آن را یکیشان بر شانه گرفته بود. حدود بیست دانش آموز هم برای اینکه گم نشوند، پشت سرهم هم با تنابی به هم بسته شده بودند و راه می رفتند. برگشتم و نگاه کردم. مسیر شهر تا ورودی پادگان را صف جمعیت مانند کمربندی به هم پیوند داده بود. وقتی با زحمت زیاد به ایستگاه هیروشیما رسیدم دیدم روی های باری و حتی روی های مسافربری خط تعویز ها کنار پادگان شرقی هم آوارگان با فشار و ازدهام سوار شده بودند. روی سخف های مسافربری نزدیک ساختمان ایستگاه مسافران زیادی سوار شده بودند و فریاد می زدند. حرکت کن، حرکت کن. نه کارکنان ایستگاه تکانی می خوردند، نه قطارها. اما آوارگان پی در پی به سمت ایستگاه و همدیگر فشار می آوردند. پنجره ها، چهارچوب پنجره ها و نیز درهای ساختمان ایستگاه از بین رفته بود. اینجا و آنجا دیوارها فرو ریخته بود. از کنار ساختمان ایستگاه حرکت کردم. در خرابی بزرگی دیدم قسمت های خراب شده به تیراهن قطوری آویخته و در فضا آویزان بود وقتی از زیر این قسمت عبور کردم از آنجا خلاص شده بودم در جایگاه سوزنبان یکی از کارکنان جوان ایستگاه را دیدم که بیست ساله به نظر می رسید او تجهیزاتی راه می سرپا سر پا می کرد و با خودش حرف می زد هیچ کدام کار نمی کنند. در جهت آن جوان و در جهت مخالف ایستگاه حرکت کردم شهرک مقابل ایستگاه دچار آتک شده بود پس به آن نزدیک نشدم. وقتی خواستم از پشت کوه هیجی یا ما دور بزنم متوجه شدم کاخ فصلی امپراتوری نیست. به نظر نمیرسید راه را اشتباه آمده باشم با اینکه قصر امپراتوری نبود اما کوه کوه هیجی بود. به علت آتش سوزی نمیشد از پل ماتوبا گذشت. از پل تایشا گذشتم از سمت جنوب کوه هیجی دور زدم و کنار مدرسه بازرگانی دخترانه رسیدم آن اطراف شهرکی مسکونی بود اما اکنون ردیف خانه‌ها به فضایی باز بدل شده بود به ندرت هم کسی رفت و آمد می‌کرد با احساسی پوچ پارس سگی را در دور دست شنیدم دو سه زن شوهردار کنار راه ایستاده حرف می‌زدند می‌گفتند با اینکه شیرفلکه آب را باز کردیم اما از آب خبری نیست. نمیشه و را شست. نام آب را شنیدم و ناگهان تشنگیم را یاد آوردم. در گلویم احساس درد کردم. به آسمان نگاه کردم. یک قسمت از سر ابر عروس دریایی که رنگش کم شده بود به کناره غربی کوه هیجی نظر داشت. فکر کردم آیا ابر به سمت شمال کوه هیجی حمله نخواهد کرد؟ وقتی باد شرقی میوزید دود حاصل از آتش سوزی ابر را ناپیدا می کرد. اما با تغییر جهت باد باز پیدا می شد. در کیف پولم 120 ین و چند سکه داشتم. اگر کسی بود که آب بفروشد، حرفی نداشتم برای یک لیوان 120 ین هم بدهم. حتی اگر برگ تازه درخت چای هم بود، آن را می جویدم. به هر حال وقتی برای نوشیدن آب جلوتر رفتم، دیدم در محل لوله های آب، سطلی گذاشته شده که حدود هفتاد درصد آن پر از آبی بسیار تمیز بود. دو دستم را بر لبه های آن گذاشتم. مانند سگ سرم را داخل آن کردم و با ولع و اشتها تا نفس داشتم نوشیدم. حتی فراموش کردم ابتدای نوشیدن سه بار آب را قرقره کنم. فقط نوشیدم. بسیار گوارا بود. خیلی زود خنک شدم اما ناگهان نیروی تمام بدنم خارج شد. دستانم که بر لبه سطل فشار می آوردن نزدیک بود در بروند لبه سطل را محکم گرفتم با دو پایم فشار آوردم و بلند شدم پارچه خیز بر سینم افتاده بود پارچه سگوش بود نفهمیدم که از سرم در آمده و دور گردانم افتاده بود وقتی شروع به راه رفتن کردم عرق از تمام بدنم جاری شد و همه جایم را گرفت آینکم ابری و تار شد میستادم، ایدم می میکردم راه هم میرفتم حرکت میکردم وقتی با زحمت به در اصلی کارگاه تهیه لباس نیروی زمینی رسیدم با توجه شدم ابر موکوری کوکوری در مقایسه با وقتی که آن را کنار رودخانه دیدم پنج تا شش برابر پف کرده است در عوض رنگ آن پریده بود و چیزی جز مهم مبهمی پیرامونش نبود به نظر میرسید آن عبر که تا حالا بسیار مهیب مینمود از پوست خارج شده و بیشتر قدرتش را از دست داده است. هی، hey, با فرمانده ی, ناهیه ی نیرو تماس گرفتی؟ بله، برای تماس رفتند. از داخل کارگاه تولید لباس نیروی زمینی صدای افرادی به بیرون درز می کرد. سایه دو سه نفر را هم می توانستم ببینم که با عجله این آنور می رفتند. تا حدودی احساس آرامش کردم متوجه آتش سوزی شدم نمیدانستم کجا و به چه شکلی می سوزد و در عین حال نمیدانستم آتش سوزی به کدام سمت گسترش پیدا می کند نمیدانستم خانهام چه شده است؟ اگر شهرک سندا در حال سوختن باشد باید همسرم شگکو به زمین ورزش دانشگاه فناورده باشد. این قراری بود که از قبل برای مواقع ضروری گذاشته بودیم. یاسوکو با زنان همسایه آزم شهرک فروعه شده بود، پس جای نگرانی نبود. با این فکر که کمی در این اطراف استراحت کنم، قدم میزدم که ناگهان صدای گربه شنیدم به اطراف نگاه کردم. کنار پای مردی چکم پوش، گربه ابلغ دیدم. ابلغ، ابلغ، صدا زدم. گربه با حالتی که معلوم بود من را نمی خواست به سمتم بیاید اما وقتی مرد چکم پوش ایستاد، دوباره به چکمه اون نزدیک شد. شما آقای شیزوما نیستید؟ آه آقای شیزوما. این را مرد چکمه پوش گفت. بله شما آقای میاچی هستید. با اینکه احساس می کردم اتفاقی بسیار تصادفی رخ داده است. اما فهمیدم در واقع آقای میاچی همسایه امان بود. آقای میاچی از حدود دو ماه قبل پوشیدن چکمه نظامی و بیرون رفتن با آن را شروع کرده بود. با اینکه بسیار گرم بود یه اسکی می پوشید و برای تهیه مایحتاج شرکت محل کارش این طرف آن طرف میرفت. امروز مانند همیشه حاکامای نظامی به پا داشت، اما بالا تقریباً تقریبا لخت بود. کلا هم نداشت. چطوری؟ زخمی نشده ای؟ پوست پشتش از قسمت شانه به پایین کاملا کنده شده. و مثل ورق مجلی خیز خورده به پایین آویزان بود. پوست پشت دو دستش هم آویزان بود. صورتش رنگ پریده بود، اما زخمی نداشت. فکر کردم پوست آقای میاچی با شعله آتش سوخته است، اما وقتی حرف زدیم معلوم شد چنین نیست. آقای میاچی صبح زود به خانه آشنایی سرزده بود که از آنجا برج قلعه هیروشیما دیده می شود. قبل از ورود به کفشکن، خواسته بود پیراهن یقه اسکی خود را درآورد. فکر کردم آیا به خانه زنی جدید سر نزده بود شایعه زن بودن آن آشنا وجود داشت با عجله راه رفته پس خیس عرق بود به این دلیل می خواست لباسش را درآورد. اما وقتی پیراهنش را تا بالای سر کشیده بود صدای بسیار بلندی همراه جهش نور همه جا را پر کرده بود با اینکه سر و صورتش با پیراهن پوشانده شده و پلک هایش هم بسته بود، او توانسته بود نوری را احساس کند که از لباس گذشته. بچه شد، نمی داند. وقتی به خود آمد که به سمت خندق قلعه می برج قلعه ناپدید شده بود. قسمت فرماندهی گردان پنجم در داخل قلعه هم از بین رفته بود. برج از سکویش کنده و کنار خندق روبروی شهرک تخریب شده بود. نمیدانم برای چی از خود بیخود شدم. آقای می چی در حالی که شانه به شانه من قدم میزد گفت. به هر حال فکر کردم بهتر است به کوه نزدیک شوم بنابراین به پل یکواگواوا و بعد به قسمت فرماندهی نظامی مشترک شماره دو آمدم. از آن وقت گربه همراهم هم آمده است. این نشانه خوب است یا بعد؟ چه شده؟ قسمت فرماندهی نظامی مشترک شماره دو در شمال پادگان شرقی قرار داشت به عبارتی آقای میاچی از یوکا گاوا تا اینجا از طریق مسیری شبیه من فرار کرده و آمده بود ما قدم زنان از مقابل مرکز تیهی لباس به سمت اداره توضیح انحصاری منطقه رفتیم تمام خانه های آن خیابان به طور کامل فرو ریخته بود سیم های پاره شده و مانند تنابهای آویزان بر بالای مغازه آویخته شده بود. صفحه و سایر مسائل ساختمانی خیابان را مسدود کرده بود. گربه گاهی جلو و گاهی عقب همراه آقای میاچی میامد. آقای میاچی بسیار بد قدم برمیداشت. هر آن به نظر می میافتد. کاملا شلوول بود. دوباره نگران شدم. تکهی خیزران را به عنوان اصا برای آقای میاچی برداشتم اما پوست پشت دستهایش هایش کند شده بود پس فکر کردم از خواهد شد دور انداختمش در حالی که ها را لگد می کردیم و اسباب خانه ها را کنار می زدیم، از میان کابل های برق آویزان می و آرام آرام پیش می رفتیم را که لگد می کردیم ترق تو می شکستند کفش ها سر می خوردند و و دست بر زمین می گذاشتیم و با کمک دست بلند می شدیم. اما بسیار سخت و آزاردهنده بود. به غیر از ما دو نفر هیچ کس در حال عبور نبود. در سکوت مطلق صدای شکستن صفال ها زیر پا به نحو غریبی تنین انداز می شد. بزرگ روی موج صفال ها افتاده بود. پای زن جوانی را کشیدم که با از بالا تا کمرش پوشانده شده پوستش را هم نیشگون گرفتم مرده بود به نظر می رسید گربه یبلق به بوی چکمه ها خو گرفته است بی دنبال آقای میاچی اچی می تا مسیر عریز ترانواهای آزم اوجینا همراه ما بود رفت آمد ترانواها متوقف شده بود وقتی به اینجا رسیدیم چهره شهر یک بار تغییر کرد کامیون های لبریز از زخمیها ها حرکت می کردند افساید نظامی در اتومبیلی در حال حرکت نشسته بود. یک زخمی با گاری دستی داشت زخمی دیگری را میکشید. زخمی‌های زیادی که پیاده بودند، به آوارگانی که در کنار راه و پادگان شرقی دیده بودم از لحاظ شکل و قیافه شبیه بودند. اما اینجا افراد تکی چوب یا خیزران را به عنوان اسامه مورد استفاده قرار میدادند. اینجا فریاد کمک کمک ناله و جیق تقریبا به گوش نمی‌رسید و زخمی های در حال فرار وجود نداشتند. به هر شکل فرار کردن فقط عجله برای رفتن به سوی جهان بعد از مرگ بود. در میان آوارگان مرد فلجی بود که با دست سه را پیش می‌برد و انگار دیگران را دست به با نظم و آرامش از آنها سبقت می‌گرفت. آقای میاچی با دست انداختن به دیوار اداره توزیع انحصاری راه می‌ری دیگر نزدیک بود بیفتد، چون دیوار تمام شده بود آب آب بدهید وقتی فکر کردم چیزی مثل این گفته است تلو تلو خوران کنار تراموا ایستاد که از کار افتاده بود دلم جایی دیگر بود اما به ترانوا نزدیک شدم و در حالی که داشتم می چهار دستو پا از ورودی آن بالا رفتم آقای میاچی در همان ورودی نشست داخل تراموا بر سندلی های کنارم پسر بچه نازی که به نظر می رسید توانایی راه رفتن دارد، دختر بچهی هفت هشت ساله و پسر بچه ای که راکت پینپونگ در دست داشت نشسته بودند. به نظر می رسید دانش آموز ابتدایی هستند. پارچه ی سه گوش پانسمان فوری را روی پوست سرخ کنده شده کتف آقای میاچی گذاشتم و گوشه های آن را روی گلوب گره زدم. مثل دستمال گردن سفیدی دیده می شد. آقای میاچی، منصوره اینجا هست استفاده می کنید وقتی این را گفتم با سر جواب مثبت داد ولی آب می خواهم آن آتش سوزی به آسمان اشاره کرد از حوالی مرکز شهر تنوره بسیار ترسناک شعله های آتش به آسمان زبانه میکشید. کشید ستون های آتش بسیار بزرگ دود و آتشی که از جای جای شهر برمیخواست یک جا به هم نزدیک می و در حالی که دیواری از آتش و دود را نشان میداد به ابر عبر دنبال داری از دود تبدیل می شود. در اطراف تنوره ی آتشی که آن ابر دنبالدار را سوراخ می کرد توده های آتش کوچک یا چیزهایی هایی شبهگونه تکه, تکه بر زمین فرو می ریختند ستون ها، و سردر خانه ها را تنوره آتش در برگرفته بود و در حال سوختن به زمین میریختند. با اینکه وزش باد آنها را از دید خارج می کرد اما باز گهگاه شعله های آتش روی سقف ساختمان ها می خوابید چون فکر میکردی مانند تناب بزرگی از آتش می سوزانند و پیش میروند. یک بار شعله ها چنان ماجه بزرگی میشدند و سر شعله ها که شدید تر بود بر پنجره های ساختمان های بزرگ می کوبید آقای میاچی با صدای لرزان گفت شعله آتش مانند مار است میخزد و فشفش کنن از پنجره ها زبانش را داخل می کند ناگهان میخزد و میرود آنجا که آتش از آن زبانه می کشد فروشگاه بزرگ فکویا است موج آتش فروشگاه بزرگ فکویا ساختمان اصلی شرکت توزیع برق چوگاکو روزنامه یه چوگو و بان، شهرداری و سایر ساختمان های بلند را در گرفته و از چندین پنجره آنها که رو به سمت جنوب شرقی بود آتش یکباره به بیرون زبانه کشید. اما در هر موج شاید ده تا بیست خانه معمولی میسوخت. بعد که تغییر جهت میداد ناگهان آتش جایی را در بر می گرفت. از وسط پف می کرد. بعد از شکل دوک نخریسی به گویی آتشین بدل میشد. و رقصان بالا می رفت در چشم به هم زدنی ای مرکز این گوی به هم می ریخت و در حالی که دهان باز می کرد بالا می رفت غریبی قریبی بود دستم را روی سینه هم گذاشتم ترس را پشت سر گذاشته و ضربان قلبم معمولی بود احساسی نزدیک به پرت شدن یا بل ایده شدن توسط زمین داشتم سرم کرخت و بیهس بود آقای شیزوما بیا به خانه برگردیم. آقای میاچی با این گفته بلند شد. قبل پیاده شدن از تراموا نگاهی انداختم. آن سه بچه در آن فاصله رفته بودند. تا مقابل در اداره توزیع انحصاری که رسیدیم، در آن سوی رودخانه توانستم برآمدگی سقف خانه ام را ببینم که هنوز نسوخته بود. دود هنوز در فاصله دوری از آن دیده میشد. خانه‌ام برجا مانده بود. ناگهان تمام نیرویم از بدنم خارج شد و نشسته روی زمین افتادم خانه آقای میاچی سخفی مسته داشت پس نمی توانستیم آن را ببینیم آقای شیزوما من نگران هستم پس عجل میکنم با آن شدت آتش به زودی سوخت. آقای میاچی تلو تلو خوران از پل میوکی گذشت و رفت ظاهرا روز بعد آقای میاچی مر. یاد داشته اضافه شده وقتی تا وسط پل میوکی آمدم متوجه شدم از نرده های سنگی پل چیزی برجا نمانده است نرده های قسمت شمال پل به ردیف و نرده های قسمت جنوبی ظاهرا درون رودخانه افتاده بودند نرده ها سنگ خارایی به ارتفاع بیش از یک متر با کنگرههایی به اندازه سی سانتی متر بودند به فاصله حدود دو متر از هم چیده. و روی هر کدام کلاهی سنگی به ارتفاع کنگره ها گذاشته شده بود حدود ده تا از این نرده های عالی اکنون فرو ریخته بودند در قسمت شمالی پل مردی نقش زمین شده بود آقای میاچی نبود زیر پل هم چندین نه شناور بودند همانطور که از قبل با خانواده قرار گذاشته بودیم با عجله سمت میدان ورزش دانشگاه هیروشیما رفتم که هنگام بمباران هوایی پناهگاه مردم بود اطراف دریاچه و زمین ورزش همه جمع شده بودند این محل در فاصله چهارصد پانصد متری میوکی قرار داشت در فاصله زمانی که به آنجا رسیدم احساس می کردم جانور بسیار خطرناکی که از قفصش گریخته مدام به من نزدیک می شود قلبم به سختی می زد به نظر نمی رسید این فقط به دلیل عجله باشد زمین ورزش پر از آواره بود وقتی از میانشان عبور کردم و نزدیک استخر رفتم رو به رویم همسرم را دیدم که بخچهای به پشت بسته پتوی روی زانویش انداخته و روی زمین نشسته بود با دست از آب استخر برداشتم نوشیدم، بعد دور زدم و به آن طرف استخر رفتم چون معمولا چمدان در ازدهام جمعیت به دیگران گیر می همیشه می‌گفتم در وقتهای پناه گرفتن حتماً باید از بخچه استفاده شود میشد راحت آن را بر پشت بست همچنین می گفتم اگر استخر نزدیک آدم باشد هنگام آتیسوزی می توان داخل آب پرید بنابراین گفته بودم برو کنار استخر همسرم با حرف شنوی این گفته ها را رعایت کرده بود کنار زانوی همسرم قوری و قابلم یک کوچکی وجود داشت پرسیدم زخمی که نشدی؟ نه به چهره من نگاه کرد بعد سرش را زیران داخت و جز این نتوانست چیز دیگری بگوید گفتم خانه چطور؟ کچ شده اما سر باست آتش چی؟ که درخت کاج داخل حیات شعله ور شد اما چون بالا بود نتوانستم هیچ کاری انجام دهم یاسوکو به فروعه رفت پس نباید هیچ مشکلی داشته باشد یاسوکو سوکو احتمالا حالش خوب است گرسنه نیستی؟ نه، نیستم همسایی ها چی؟ خیلی سری فرار کردم و آمدم پس غیر از احوالات خانه آقای نیتا سرنوشت بخیه رو نمیدانم. به نظر می کمی حواظ پرت است تصمیم گرفتم برای اطمینان بروم خانه را ببینم قاطعانه به او گفتم به هیچ فش از اینجا دور نشو همینجا منتظر بمان به, به خانه برگشتم آتش درخت کاج خاموش شده بود اما قسمت پایین تیر چوبی تلگراف داشت میسوخت. آن را با جاروی دست خیزرانی کوبیدم و خاموش کردم خانه حدود پانزده درجه به سمت جنوب و جنوب شرقی کج شده بود پاشت پنجری ها و شاجی های طبقه دوم کنده و پرد شده و یکی هم باقی نمانده بود به اتاق نشیمن بالا رفتم و دیدم خورد شیشه ها همه جا پخ شده و فوسو به شکل لوزی در آمده بودند اتاق هشت تتمی، اتاق شش تتامی، اتاق چار و نیم تتامی و دو اتاق طبقه بالا را گشتم و نگاه کردم فسومه ها در تمام اتاق ها به شکل لوزی در آمده اما کند نشده بودند وقتی از آشپزخانه به حمام رفتم و نگاه کردم آشپزخانه همسایهمان من آقای هایامی با دیوار به حمام خانه ما وارد شده بود وان چوبی همان با کاسه، ملاقه، قاشق، صافی فلزی، تنگ و غیر پر شده و بر دیوار رختکن، تسکودانی، ترشیهای سبزیجات، برگ چای و غیر پاشیده و چسبیده بود. یک تکه ماهی مرکب پرنده هم روی تخته افتاده بود. اینها چیزهایی بودند که از خانه آقای هایامی به اینجا پرت شده بودند. وسوسه چشیدن آن ماهی وجودم را گرفت. جزء خوراکی های اعیانی بود پس به بهانه برای اعیانی خوردن نه برای یادگاری آن را در پاکتی گذاشتم دوباره به اتاق شش تا تامی برگشتم و چای سرد شده را از لبه قوری سفالی نوشیدم برای پانسمان گونه چپم داخل جعبه داروها را گشتم اما هیچ پمادی پیدا نکردم آینه قدی افتاده و شکسته بود به تقویم روی ستون نگاه کردم شعار آن روز جامعه تسلیم نمی شویم.